همه عباد و نکات نمیتوان پرداخت محصول این کلاس و عدفگزاری این دوره طبیعی است اینه که اولا خیلی اثر بران مطالعات پیشینی دارن و آمادگی های ذهنی و علمی لازم رو به حول قوه الهی دارن و ثانیه خوب در مسیر دانش و آموختن هستن و ادامه مسیر میدن و دارن تحصیلات عالی رو در حوزه ان هم دوره ادامه می دهید این دوره در این وسط چه می کند؟ میاد به شما یک کدهایی یک نمونه هایی و مسیر رو نشان میده که شما بتوانید در پژوهش و مطالعات اونها رو دنبال کنید و پیگیری کنید و به نتیجه برسانید رسا صرفا در این محدودیت مثلا مباحث هر استادی در هر موضوعی که در اینجا خدمتشون هستند عزیزان نمیتوانند تمام اون نکات رو به بست و تفصیل بیان کنند اما این موجب می شود که شما بتوانید اون با اطلاعاتی که از این دوره به دست میارید خودتان به درستی مسیر رو طی کنید و در مطالعه انسان به انحراف نده بتونه مسیر مطالعه رو درست تقیه کنه لذا تکمیل این دوره ها طبیعی است اون پسینی شماست و پیگیری های شماست که این مطالب رو به ویژه اونهایی که میخوان در مبانی فقهی رشتهشون فقه هست و میخوان واقعا یه اطلاعات دقیق و مبسوطی از مبانی فقهی و قوت فقهی مباحث رحبری بخوان پیدا کنن باید پیگیر مباحث باشن بعدا با مطالعات تطویقی و موردی اون مباحث رو انشالله ادامه بدن خب ما ساعت یک ساعت اول ما ساعت چند الان که تقسیم وقت کنیم نه ساعت الان ساعت هم چنده من هشت رو به خب که یک بخشیش رو قرار شد ما باشیم این بخشیش خدمت عزیزان این ساعت اول رو مدوریت کنیم این کلیت بس بود برای دوره که انشاءالله سرولان این مسیر رو ادامه میده ما هم قرار اون نگاه کلان به فقه چون جلسه اولم هست و یک است به کل دوره اون که هدف از این جلسه هست ما آشنا بشیم با تعریف فقه و روی کرده های فقهی و اون کلان نگاهی که حضرت امام راهد رحمت الله علیه و مقام عظم رهبری رفضه الله دارن در این که ما در این نگاه های جدید با حفظ تراث چگونه باید از این میراس استفاده کنیم که هم در چارچوبهای های صحیح و قویم تعریف شده فقه تیه مسیر کنیم قابلیت های او را بشناسیم که چیست و هم بتوانیم بر اساس این روی کرد که توضیح خواهیم داد یه فهم جدیدی از این روی فقه حکومتی نظامساز داشته باشیم و بیاییم از این مجموعه ارزشمند در راستای اداره جامعه و تولید نرمفساره حکومت اسلامی استفاده کنیم خوب فقه ما چیست؟ چه ویژگی هایی دارد؟ این نگاه تحولی چیست؟ و این نگاه برداشت صحیح از اون چیست؟ و میخواد این رویکرد به ما چگونه ما رو در مسیر تحول کمک کنه؟ این هدف از است که تو این یه ساعت تغییر خواهیم داشت که تعریف از فقه روی فقهی روی کرد فقه فردی اجتماعی و حکومتی ویژگی های تحول در فقه و این روی کرد و اختضاعاتی که این روی کرد خواهد داشت که اون تغییر کلان و دعوای اصلی همینجا هست که ما این حرفی که مرحوم امام جلوی روی ما گذاشت که بیایید به فقه با این نگاه مواجه داشته باشید و امتدادش رو ما در کلمات رهبری معظم می‌بینیم این نگاه کلان تو جلسه اول ما میخوایم این رو بررسی کنیم و نکات لازم رو در چند بخش خدمت شما عرضه کنیم روز بعضی بخش های تر رو به سرعت میگذریم اون بخش هایی که نکات جدید تر و دعواس اونجا مقداری تعمالی بیشتر و یه مقداری اونجا مکس بیشتری خواهیم داشت خب ما از اون تعریف های فقه خواهیم گذاشت که فقه رو در معنی لغویش هم به فهم علم ادراک و حتی بعضی اومدان در خود معنای لغوی هم تأمل دقیق معنا کردن که در کلمات خوب مختلف از مثل های جوهری جلد 6 صفحه 22 43 فیومی در اسم الحمنیر صفحه 479 و دیگر منابع اینجا هست اما در زمانی که معنای اصطلاحی رسیم این نکته من از باب تکمله تحقیق و پژوهش arras کنم شما هر وقت یک لغت شناسی میکنید خلاصه محصول لغت میگید این معناست این دقت کنید من دیدم خیلی تو مقالات رفقای جوانتر این هست بیا این شش معنا داره نه غالبا واژه ها یک دو معنا دونند مابقی کاربردن این سه معنا هی جاهای ما متعدد مناسبت وضع شدن اونها رو میگن کاربرد خیلی جا بین مفهوم و معنا و چی میشه خلط میشه برای اینکه همش شناسایی کنید یه کتابی که دم دستی از نرمف سادش هم جا موجوده مقایسه ابن فارس میگه لهو اصلون واحد لهو اصلان هم سای جوهری این خصوصیت داره هم مقایس لذا بین معنا و کاربرد خلط نکن شش معنا داره کمی لغت شش منده داشته باشه شما مقایس از این بعد مراجعه کنید اصلون اصلا اصلن سلاس اصول خیلی کمه که سه ریشه اصلی و سه معنای اصلی قسیم داشته باش. این نکته اول حالا نکته تکمیش و دروغا دورای علمی پژوهشی است این نکات هم رابلاش عرض می‌کنیم به عنوان مکمل می‌رسیم معنای اصطلاحی معنای اصطلاحی هم ببینید که اگر هر اهل دانشی برون معنای لغوی یه قیوداتی در تذقیقات یا توسعه اضافه کردند که یه معنای جدیدی رو یک معنای خاصی رو ifade میکنه شما میتونید بگید معنای لغوی معنای اصطلاحی یعنی این اصطلاح شد در مثلا استصحاب لغت میشه همراهی طلب همراهی اما تو اصول که میای طلب همراهی نیست که من همراه شما بشم کجا بریم اونجا میشه یک قاعده خاص بقای مکان پس شد اصطلاح خیلی, خیلی اوقات یک لغت که از بستر استعمال عرف ما یا تو دانش اصلا اصطلاح نمیشه و هم معنی فوقها نیاز دارم کار میزنن اونجا هم بعد شما بگید کاربرد فقهی کاربرد اصولی چون اصلا تبدیل به اصطلاح نشد یه وقت نه از اون معنا با قلودات یه معنی جدید دیگه میده اونم وقتی میشه اصطلاح درس اینجا هم خیلی از نویسندگان مثل معنای اصطلاحی بعد میخونیم اصطلاح ذکر نکرد همون لایسای معنای لغوی است باز مردم اون نویسنده اون اهل فضل ی همونجا طرف میگه بعضی اوقات شما با یه نگاه میتونید بفهمید قداغوار نویسنده چه حده این نکات ظریف از لغتشو میخونی یعنی هشت تا معنا درست کرد میای تو اصطلاحش در کلام فلسفه فقه یعنی این معنای که اصلا کارورد اصطلاح نشود میزه معنای اصطلاحی باز میبینی هنوز در اولیات تحقیق این نویسنده قرار داره اون قوام علمی رو پیدا نکرده خب بگذارید زمانی که میرسیم در استعمالش در دایره استعمالات مجموعه دایره شریعت این فقه رو میبینیم در چند تا این معروف کاربست اینجا چند جو به کار رفته اید. و با قیودات آخر می رسیم که این معناش مو قضاوت این معنا شده یا نه یه وقت ما فقه میگیم فقه رو به معنای علم شریعت خیلی کلام میگیرن تفقه به معنای پیجوی و فهم دین معنا میشه تفقه در دین و اینجا فقه میشه مرادفه با دین فقیه میشه آشنای به مسائل دینی علامه هلی ارشاد و یک 1.19 اینجایشون استعمال کرده فقر و معنای علم به شریعت به کار بود. شریعت میشه هم از اعتقادات، اخلاقیات و احکام. فقر معنای وسیعش. در یک جای استعمال دیگری ما داریم که میاد در معنی علم به حلال و حرام و احکام. فقرم تو خود این موضوع به کار میره. فقیه میشه عالم به حلال و حرام. و خب دیگه اون معنای اعتقادات و اخلاقیات توش نیست میاد رو همین علم به احکام و اعتقادات و در یک معنای دیگری این میاد در خود فقه به معنای دانش معرفت بر احکام این نگاه دانشی داریم یه وقت خود احکام معرفت بر خود احکام میشه فقه میگه فقه این مجموع احکام اسلام یه وقت فقه دانش در برابر دانش اصول در برابر دانش های دیگر وقتی دانش شد خ دانش مقدمات داره مبانی داره روش استبااد داره و مانندوم میخ دانش را یاد بگیریم و بیاموزیم و بگیم ویژیگاه این دانش چگونه است؟ بهظوقال من که ما با حالا استعمال های دیگه هم در این فق به کار میری که از اختصار ازش میگذرم مثل جایی که میری تو معنای خود استباد هم به کار میری بعضی جاها در کلمات شهصد بعضی کتب دیگه حالا ما که وقتی اینجا فقه رو بحث میکنیم یه نگاه دانشی به این مجموعه احکام داریم که دانشی دینه دانش فقه خب این دانش برای خودش روش شناسی داره مبانی داره ساختار دانش داره و میخوام این با این دانش ببینم چه کنیم روش استنباط اون احکام موجود در دانش داره حالا از این تعریف بگذاریم در اون نگاه کلان و یک تعریف جدید تر که خب آقایون این دانش رو دانش ناظر معرفت بر حلال و حرام معرفت بر مجموعه احکام اون ان ادله تفسیریه و نکات دیگه‌ای که درش هست معنا کردن ای که تبون معانی که در نگاهی که در روی کرد میاد ما زمانی به کلمات امام رجوع می‌کنیم در اینی که به این معنا سهم می‌گذارند اون متعلق احکام رو بهش توجه می‌دند امام دائم نمیخواد بگه من فق را به جای جدیدی بردم. اصرار امام تو همون دست خارج بود. <تصفح> بیش که من بلد فقری چار شده که آقا این است. فقهای مسائل رو دارند. فق اینگونه بوده و هست. لذا اصرار مرموم امام اینه که فرق مجموعه ای از احکامه. و معنای احکام و معرفت میخوایم بیان کنیم میشه مجموعه اون علم به احکام اما چه احکامی؟ به احکام فردی و اجتماعی و حکومتی میگه فقیقی مجموعه تو کتاب بلاد فقید مراجعه کنید امام اسرار داره, داره که آقا دو بگم قرآن سیاساته چقدر احکام همه احکام ما احکام سیاساته و محنن دین حضر میگه فقه هم این احکام عوابه مختلفی که در فقه داریم که فقط مسئله فردی نیست و در تعریف میشه از نگاه امام این گونه بیان کرد فقه اون جمله معروف صحیفه 21-289 فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا بور این تعبیر از ات میگه اون تئوری واقعی و اداره زندگی به انای و ها در عباد مختلفش در کلمات رهبری هم سی و یک شش هزار ست اشون میگه احکام فقهی همه ی انسان رو هم از احوال فردی اجتماعی سیاسی اقتصادی و بقیه اون رو شامل میشه ولی فقه گستری وسیعی در اینجا داره در کنارش هم همیشون از بحث فقاهت تو کلمات رهبری فراوان هزیاد میکنه و فقاهت رو میگه شی پس فرق شد این مجموعه به معنای یا دانش یا خود اون احکام هر دو استعمالش رو داره خود احکام یا دانش بر استعمال احکام یه وقت شون نگاه دانشی دارید به علم یه وقت به خود محتوای دانش کار دارید اگر با محتوای دانش کار داشته باشید فرق میشه معرفت بر احکام احکام مکلفان در فردی اجتماعی و حکومتی در این مسیر فقاهت چه می شود از نگاه مقام معظم رهبری میشه شیوه استنبات و رد فر به اصول از کتاب و سنت و عقل و اجما می همون سی یک شش فقاهت رو معنای شیوه استنبات و در جای دیگه همیشون اشاره می که با این شیوه می شود تمام نیاز های بشر را استخراج کرد یک دوازده هفتاد خب در پیشینه من میگذرم می گذرم در پیشینه و تاریخ فق فقه دوره های مختلفی رو گذران به اجمال در چند سطر ما دوره اول دوره بود اصر نصوص یعنی اصحاب ائمه مطالب رو از خود امام سؤال میکردن اونجا فقه به معنای علم معرفت حکام که از خودش قرآن و آموزهای قرآن ریشه میگیره و این بیان احکام در قرآن ها هست در روایات تجلی پیدا کرده و در مسیر که تبدیل شده آرام آرام در زمان امام باقی امام صادق به یک دانشی که ائمه شیعه استنباد یاد دادن پریز از قیاس مانند او یاد دادن باعث اصول فقه پایهای اولیش پای گذاری شد این ضوابط استنباد قواعد عام استنباد گذاری شد آرام آرام مشاهده دانش فقه هستیم از زمان اهل بیت اینا رو برای این ارز کردم که این مطالب در کلمات رهوی در رابطه دانش تاریخ دانش فقه من چند تا آدرس میدم یه خودتون بریم مجال مراجعه کنید شاید انتظار دوستان این باشه که مثلشون دا تاریخ دانش فقه سخن نگفته باشه نه ایشون داره و میگه دانش فقه شاید دگرگونی هایی بوده روز به روز گسترده شکوفاتر و با اسلوب و روش برخوردار شده 14-11-72 در دوره های مختلف در لابلای کلمات ایشون این مطالب رو ما میبینیم که در رابطه با تاریخ فقر ایشون مطالب متعددی رو دارند 28-1372 ایشون نکاتی دارن 28-1-72 نکاتیشون کنگره شیخ مفید می پیدا کنید اگه من از این بگذرم به این وارد بحث بعدی بشیم در کنگله شیخ مفیدشون یک مقاله اون جزن مبسوط و در اون مقاله مبسود اون نگاه تاریخمندی به دوره تطوره در فقر را مفصل ذکر کردن دوره شیخ توسی دوره قبل شیخ توسی تا شیخ مفید قبل شیخ مفید کاره که شیخ مفید کرد زمان شیخ توسی زمان علامه هلی مفصل اینا در هم کلمات ایشون آمده در جاهای مختلف 13.9.74 هم این آدرس هم بفرمایید این که دو آدرسی که خدمت شما ارز میکنم مجموعه مطالبیست که ایشون به این تاریخ فقیق یه توجه مبسوید و تو این دو, دو آدرس اخیر که ارز کردم فرمودن اون مطالب رو دیگه 14.3.76 و این مطالب رو دیگه مراجعه کنید ما ازش بگذارید خب نکاح تاریخی و توضیح ادوار فقه چه تلوراتی اتفاق افتاده اونجا هست مراجعه با خود شما ما این آدرس دادیم که یک بخش مهمش هست که تو همون مطالب سکرشون برای کنگره شیخه مفید اونجا نوشتن و عرضه شد و خوانده شد یه نگاه مبسوطی به این مباحث تاریخ فقهشون اونجا داره. بحث بعدی جایگاه فقه در منظومه معارف خب این بحثی است گسترده وقتی که امام میگه تئوری واقعی اداره کل زندگی خب زندگی انسان این خیلی روش فکر کنیدم امروز شما توی تحصیلات میکنید یا این همه نیازی نیازمندی ها ناگید ما این روی کرده جدید که امروز روز تعطیل از اقصانوقاد کشور جمع شده در حضوری مجازی اینجایید ارادتی است که ما گفتمان ما امام امام این انقلاب داریم درست یا نه از این بر تو ذهن جای بحث نیست تو ذهن شما جدی از این کار کرده فکر چی؟ این بود این همه شباهات، این همه اختشاشات، این همه مسائل این همه نیازمندی ها بعد امام میگه فکر تیوری واقعی کامل اداره زندگی از گهواره تا گوله یکی ما فکر کنید خیلی ها ما این قبول ندارید من اینجا نشستینا امام که کرد بکرد تمام این نیاز امام زیله امام و مازم رهبری هم یک از بیشترین کسانی که درباره امام پجوهی تو این 20 سال اخیر، 40 سال اخیر سهم گفته که آقا مازن ربی تو این سلسله سخنرانی‌های سالگرد و غیر سالگرد امام ببینیم. بیشترین از شخصیت‌های برجسته نظام در سطحشون که در رابطه با امام و موانی امام مطالعه کرده چون هر سخنرانی ها مطالعه می‌خواد، کار می‌خواد. مطالعه کرده، پجوهش کرده و دست‌بندیشه مطالبه بود خود آقا مازن ربی. از اونور فقه امام شون مطاله متعدد در رابطه روی کرده فقهی امام داره حالا بعضیش من اینجا اشاره میکنه خب، حالا میگم امام میگه فقه اداره کامل تئوری واقعی و اداره کامل زنگه برطاگوری یعنی چی؟ زندگی که اقتصاد میخواد، جامعه شناسی میخواد، تربیت میخواد، مدیریت میخواد جای بستش نیست، یه خوش موضوعه اما اگه به امام ارادت داریم به ایشون رو به یک با می‌شناسیم که این مجموع هم آرف بودم فقی بودم فیلسوف بود و آمد این کار بزرگ رو انجام داد یه مقدار رو این فکر کنیم که چه ظرفیتی در فقر هست که تئوری کامل اداره زندگی میاد تایش میاد فقر داره که امام که نیازمندی دیگر رشته ها رو هیچ وقت منکر نبود جز واضحات نیاز زندگی بشر به دیگر علوم اما این چه نقشی دارد مدیریت کنید؟ مدیریت فقه به الواقع چه کار میکنه؟ بندی و بیان زابطه برای مجموعه نظام رفتاری انسان در عرصه های سیاسی اجتماعی اقتصادی مدیریتی تربیتی است این جمله فکر کنید فقه یه بخش مهمی از نمیگم تمام ضوابط. یه بخش مهمی از ضوابط، چارچوب نظام رفتاری انسان در اقتصاد میخواد قرض بدی، بگیلی، معامله کنی، چه کنی، این اقسام عقود بانکی تو مدیریت تو عرصه نظام سیاسی، تو عرصه تربیتی خیلی جا رفتار انسان و مکلف گره میخوره به چارچوب بندی نظام رفتاری به احکام. les میشه chez une میشه و علوم دیگر در جای خودش، لذا این نگاه این نگاه بله پس نکته دوم بحث ما بعد اون تعریف نکته دوم پیشینه گذشتیم نکته سوم هستیم رابطه فقه و دیگر دانش ها در نگاه حدعقلی به فقه شاید بگیم فقه یک بخش است دیگر علوم امروز که داریم علوم انسانی و علوم مثلا تجربی پایه یه بخش دیگه عناقیده علوم پایه و تجربی اینا داریم ریاضی فیزیک چه کسی علوم انسانی داریم مدیریت و اقتصاد و جامعه شناسی و سیاست و علوم تربیتی یه بحثا میوا احکام داریم تو نگاه درغلی اینا سه بخش تقسیم میشن حالا وزنشون باید وزن کشی کنیم وزن این چقده وزن اون چقده وزن اون چقده اما وقتی که نگاه که میاد در ادامه می اون نگاه روی کرد روی کرده از فقه فردی میره به روی کد اجتماعی و حکومتی دیگه فقه میره تو دل علوم انسانی هم جای میگیره علوم انسانی چیست علوم انسانی داره در رابطه نظام های رفتاری سه سیاست اجتماع مدیریت تربیت صحبت میکنه خب این رفتار متعلق احکام نیستن در حال چارچوب نظام تربیتی اسلام حرف نداره تو نظام تربیتی فقه جایگاه نداره ما رسیدم به اون بحث های فقه نظام یه مثال اونجا برای شما میزنن این طلب شما پس در این نگاه دیگر رابطه فقه با دیگر علوم خیلی پیوسته می شود به خللاف نگاهت در قلی به فقه که میشه قصدیم اون و شاید وزن اون خیلی بیشتر هم بشه وزن این محدود بشه. آه تغییر این روی کرده تئوری اداره واقعی زندگی گهوار تا گور یعنی بخواین نخوایش ما پیوند میخوری با اره های دانش های دیگر در دانش های دیگر با ویژه علوم انسانی پای فق میاد در در محصول علوم، پیزشکی هم خیلی رفتارها باز در تصرفاتی که در تدخلاتی که علوم مسشکی هم میکنه اونجا حکم هست در پیوند اعضاش در چیش در چیش در این که مرگ مغزی چه کنیم چه نکنیم اونجا که باز به رفتار با مریض و مانند اونها و حقوقش برگشت میکنه خیلی ها چه بخوایی نخوایی احکام چی هن؟ احکام هن که این هم مسائل ما فقه پزشکی امروز داریم پس فقه در این معنای جدید و جایگاه جدیدی که امام و رهبری براشون مطرح میکنن خب ما داریم که یه پیوند زیادی میخورن با معروف خود نیگر ها از اینجا ما باید نکته چهار رو میشیم اون تعریف ما از فقه امروز و گستره فقه اون دوگانهی که مطرح میکنن به نام فقه فردی و فقه حکومتی ما دوگانه بعد بیشه سگانه مده های ما این فقه فردی اجتماعی حکومتی حکومتی هم به نظام نظامساز غیر نظامساز این کلان عرضه بنده است و تقریبا از این بعد اون نقطه کلان موضوع سخن ما همین هم بود دیگه رسیدیم به اون نقطه کلیدی ورسی و بدنش پس باید فقه فردی رو تعریف کنیم و ویژگی بگیم وارد نگاه های اجتماعی حکومتی بشیم ویژگی های اون حال بگیم و بینید از این فقه چه انتظاریست خب فقه بردی از اینجا ما وارد روی کرد میشیم این تعبیل روی کرد و اولا جا بیفته این خودش یه بحثیست نکن ما تو تحولات در اصول فقه هم بحثی داریم که اصول فقه آیا باید اصول فقه نیاز به نیازهای استنباتهای مورد نیاز نظام یک اصول فقه است. که بعضی میگه این اصول فرق یه اصول دیگه بنویسیم ما میگیم نه آ یه دفتر دیگه نیاز داریم میبینن سرجاش ده تا مساله دیگر هم اضافه بشود میگیم هم بله هم نه یعنی مزی از این مسائل نیاز داریم اضافه شود همین که اون دفتر اول که سرجاش محفوظ میگیم نه اونم باید تغییر کنه مغالبه چیزی مغالبی به روی کرد این کل مسائل اصول با یک نگاه و روی کرده جدید دوباره باید بازخوانی شود و موقع همون مسئله گذشته در دلش اتفاقاتی می افتد و نظریات جدیدی خلق میشه شه افسون برای این که بله یه دفتر جدید یه اضافاتی هم مسئله جدیدی هم احتمال تولیدش و ترهش هست همون معنا که در اصول فقه رو پروندش رو ببندید بیام روی خود فقق می اون روی تحول روی کرد در اصول فقق تا به روی کرد در فقق هست در فقق هم غالبا همین هستیم که ما یک زمان داشتیم این مسائل فقص سر جاش یه مسائل مستهدست داریم از اینه توجه کنید این دقیقت هاییست که با یه فهم دقیق اتفاق بیفته تو این کلان نظری امام اینا نکات اون کلیدی و ریشهی و اولیاتی یه وقت می آقا این مسائل فقص سر جاش محفوظ نکات عزشمن درستی هست که همین هم از هست ما یه مسائل جدید داریم مسائل نوپدید نوپیدا یا مستحدث. خب این مسئله باید بررسی کنیم در فقه ما همواره در کنار اون ساختار قوین و خوبی که وجود داشت فقه همیشه دنبال مسئله مستهدست بودن کتاب های قبل از شیخ توسی نگاه کنید کتاب مفسود شیخ توصی نگاه کنید ده ها ست ها مسئله آمد بیاید تا زمان محقق هلی چقدر شرایع خود چقدر فرعون فرعون تو برسال مسئله بیاید علامه هلی رحمت الله عليهم تو بحث تحریر احکامش تو بحث قواعد احکامش مرحوم علامه هلی فر اون فر ام، فر اون فر مسئله بعدی اصلا رها کردن انقدر ریز شده مرحوم اللامه هلی شوید دوستان تا مراجعه نکردن در نیست سی تا چل تا فرزکر میکنه این هم مسئله مستعدست موجود زمانه تا زمانای ما که دیگه جای نیست مرحوم امام در تحریر انتراش شما مسائل مستهده است رو جا کرد زکرد تو ارسای مختلیت که تا اون زمان مطرح نبود پس این یک نگاه فوقه های ما داشتن امروزه هم دارن عنام که اسطلاح فقه معاصر میگن یعنی پرداختن به مسائل جدید و مستهده است مثل کلام جدید ویسا کلام جدید و طول سبحانی هم حفظه الله تذکر میداد کلام میگه که جدید نشد که این مسائل جدید کلامی. آها یه بخش اومد کلام ما جدید شد. یه وقتی مسائل جدید کلامی. فقه معاصر یا مسائل مستحدث فقه معاصر شد یا فقه به مسائل معاصر و اصری خود پاسخگوست می‌پردازد. یعنی فقه همان فقه است اما پاسخگوی مسائل جدید. این همون پرداختن به مسائل مستحدث. تو ساختار فقه قواعدش اصول فقه خود رویکرد فقه هیچ تغییر نکرد فقه همون فقه است اما انقدر قوت دارد بر اساس قواعد و مبانی پاسخوی مسائل جدید است با همین نگاه شهید مطهری اینو ما کد میدیم که بد بخونید دیگه شهید مطهری میخواد پاسخ بده چطور شما میگید اسلام که 1400 سال قبل آمده است هنوز پاسخگوست میگه اسلامی چارچوب داره یک قواعد داره یک قوتی در طرح های نظام اسلامی شد اون چارچوب بندی نظام اسلامی ببینید در احکام و فقه حش پاسخگوی نیازهای روز است میاد نیازهای ثابت نیازهای متغیر درست میکنه بعد میاد چارچوب نظام فقهی اسلام اونجا بیان میکنه که مثلا قواعد اشتهاد و مسائل دیگر میگن هر دفعه تطبیق میشن مسائل روزو پاسخ میدن تو کتاب اسلام و مقتضیات زمان اونو اتمن بخونید خیلی جا توی سخنانی و سوالات به درد شما میخواده. چطور اسلام کهونه نمیشود و میگید تررایی 1400 سال میتونه امروز جواب بده. شاید مطرح شنگ اونجا برسی کرد. بخشش برگشت میکنه به قوتها و توامندیهای فقیشون جزهک میکنه. احکام. نظام احکام. خب پس ما همون به فقه سنتی هم باشید و فردی این قوت در فقه ما هست. که قواعد عام داره، چارچوبه های عام داره، نظام اشتهاد داره و و و مسئله بهش بده، تحلیل میکنه، خروجی بده میده این میشه پاسخگوی مسائل معاصر، مسائل مستحدث است که از این تعبیر میکنن به فقه فردی پس همین را کم نگیریم یه گلهی که ما اینجا داریم و دوستانه که اون تطبع فقاهتیشون در تعابیر که دقت نمیکنن، متلعا دقت نمیکنن فقه فردی رو که نه یک امر ناکار آمده. نه فقه فردیه ما میتونه اون او به قابلیت و هنر اسلام برمیگرده فقه فردی هم در دامن قوت ها و ویژگی های اسلام رشد کرده لذا فقه فردی هم خیلی قوت داره و توانست خودش هم الان هم میرید هنوز مراجع فقه هایی که آمدن در زمان ما زندگی میکنن در خیلی از مسئله جدید که نمیمانن چو استفتاء در اطلاعیه گلپایگانی یا اطلاعیه خویی دیگران دیگران رجوع کنید مسئله میدید جواب نمیگی ملا اون طبقه حرفی که خواهد آمد ایداله است اما این فرق فردی به خاطر قوتی که از تعالیم و طراحی مکتب اهل شکل گرفت اینو نزنیم مثل بعضی از مذاهب دیگر از ادیان دیگر که نگاه های فردیشون رفته همه چی رو بایکوت کردن و موندن پس این قوت فقه فردی ماست خودش هم خیلی توانایی اصلی پاسخو فقه سعی کردن در هر زمان خودشون رو بیا مساجعه پاسخ بدن با همون چارچوبایی که در نظام اسلام و نظام فقاهت اسلام هست اما ای که در اینجا هست حالا رحبری هم داریم میگه گستره فقه ما گستره زیادی داره ایشون ایشون میگه اون کاری که انقلاب ما داره می کند اون کارش این است که میخواد بیاد اون نگاه ها رو از اون چارشوبی که داشتیم از دایره زند فقط پاسخ که به نیازهای فردی و مسائل او خانواده خارج کنه میگه با پیروزی انقلاب اسلامی فقشی از حالت فردی به سمت حکومتی شدن حرکت کرد پس خود فقه وردی ویژگی داره اما این تحول اتفاق افتاد که توضیح میدیم چارده سه افتاده شیش حالا عرض ما این بود این روی یعنی چی؟ یعنی نگاه شما و انتظار شما از یه مجموعی عوض میشه میگی با یک روی جدید به مسئله میپردازیم همون گذشته است همون سرجاش هست وقتی روی کرد شما عوض شد یعنی با یه نگاه دیگری به فقه نگاه میکنید به حدیث نگاه میکنید میگید یه فهم جدیدی اتفاق میفته این خیلی ظریفه یه وقت شما هستی حدیث لازرر لازرر و لازرارفل اسلام هم همم خوندید تو کفایی و جای دیگه جای دیگه لازرر رو مفصل خوندید که این نفع حکم نفع موضوع زدریه و این موانیک آقایون زحمت کشیدن و دارن با اون دقت که تون حدیث سمره داشتن خب یه وقت روی کرد عوض میشه روی کردنی چی امام اومده در بررسی همین حدیث چی فر فرمود نواه کنید پیامبر یک پیغامابر از جانب غیب است و یک به یک معنا مبلغ الاحکام است این احکام از غیب میگیره تبلیغ میکنه به ما میرسونه بلاغ و ما علیکلل بلاغ میگه اینجا پیامبر در سمت چیه؟ سمت بلاغ احکام میگیره با میدید کلوزا میگو تمام این احکام اسلام اما قومی که داره پیامبر دریافت رو میگه. یه شعن دوم داره. شعن دوم چیه؟ میگه شون حاکمه قاضی قضاوت. شأن دومش قاضی قزاوت. اختلاف میشه فصل خصومت کنه. تو مسائل جزئی، سقریات، و اعصاب. حالا یا خودش یا قضاتی که منسوب میگه اما یک اینو فقها قبول دارن. تا این دوتا رو همه فقها میگه. یه نکته سفو امام ام اینجا می فرمان این هم مبانی کلامی فقه حکومتی و روی کرده حکومتی امام میگه آقا پیامبر یه شعن دیگه هم داشت شعن حاکم و اداره کننده جامعه حکومت و اداره کننده جامعه اختزاقاتی داره شعاله نمیاد همه چیز رو چارچوب کنه دیکته شده بگه که بگه اگه یه کلمه کم و زیاد کردی من رگ گردن تو قطعه میکنم اونجا به حاکم اختیار میده. که مختزیاتو ببینه بر اساس اخیاد حاکم در اون چارچوب های تعین شده اداره جامعه کند رضا اینجا اداره جامعه یه مقداری اختزایات اون جامعه بهش رفت پیدا میکنه یکی نیازهای اون زمان بهش رفت پیدا میکنه وقتی که این شد این میشه شعن حاکم و حکومتی پیامبر. رضا میگه احادیسی که دارید سه دسته کنید این احادیس احادیسی که تبلیغ از جانب خداونده برای دائم این احادیس ناظر به فصل خصومت جزئی قضاوت پیانبره حکم کلی نیست فتوه نیست حکمه اما یه احادیسی داریم که اون احادیس ناظر به چی هن؟ شعن حکومتی هن. پیانبر الان دید که به این دلیل مثل زمان از تعمیر آقا مالیات داره آیا زکات داشتن اصل جز اون اکام اولیی که خدا گفت بگو یا نه خدا یه هیتر گذاشت به حاکم خب این موارد اصل زکات و من میگم مواردش به حاکم پس اصل زکات میشه اون اکام تبلیغی اولی اما مواردش میشه چی؟ میشه به ید حاکم این نگاه این مبنا سبب چی میشه؟ حالا این نگاه این میشه ما میمین روی کرد یعنی اسلام حکومت دارد لذا امام رحمت الله در کتاب بی چی می میگه الاسلام اساسها حکومه و احکام الاسلام زوابتها این یعنی زوابت حکومت و قوانینها خیلی فرق کرده یعنی میگه تمام احکام اسلام زوابت حکومت داریست. این نقصه ما هم جمله بزنید تو همه سیدی فقه میاد خب وقتی این شد و خب کل احکام که زوابت حکومتی و اداره حکومت و خب خیلی نگاه تغییر کرد حالا با این نگاه ما بهش میگیم روی کرد یعنی آقا پیامبر چنین جایگاهی داشت احکام اسلام این سه دسته بعد تقسیم بندی کنی احادیث رو هم هر حدیث شاید جز دسته اول باشه یا دوم یا سوم امام کرسال تون رسال میگه دسته اکام سوم یه عدل تعابیر مصبته میخواد البته این خیلی ذریف و فن نیست میگه اگر این تعبیر رو کردن یا این تعبیر یا این تعبیر این تعابیر میخوره با صدور حدیث از شعن حکومتی اگر نباشه جزبه شعن اول میشه این کار هر کسی نیست چون خیلی جا احادیث سریح نیستن این در سال بیست سال فقاحت میخواد که موارد و تشخیص بدی که این حدیث از شأن اون تبلیغی پیامبره یا از شأن قضایی پیامبره یا از شأن حکومتی پیامبره. لذا زمان به لازرر میگه آیه لازرر یک حکم دائمی قاعده فقهی کلی اسلامی است که فقهای قاعده لازرر ساختن پیام میگه نه. این لازرر یک حکم حکومتی است. پیامبر تشخیص مسلحت داد. الان چه کنه؟ گوه و و لازرار بلازرار. با لازرار پیانبر چه کرد؟ نسبت به اون نخل اون زمین فروخته بود نخلش مال خودش بود نخل رو نفروخته بود و برای سرکش این نخه این میرفت خب اون خانوادن میشد با نتیجه لازرار چه شد؟ آه؟ آه؟ نتیجه لازر این شد که فقط حق ابغاء نخل در زمین سلب شد چون میدونی که نخل قابل جابجایی جایی دیگه از بین نمیره نه اینکه که بریدن بقلش انداختن اطلاف مال نکرد. فقط حق بقا را که شرد کرده بود در بی پیامبر ملقا کرد گفی نخل بغل خودت ببر هر جدیستایی به کار پس با یک روی کرد یک حدیث یه فهم جدیدی ایجاد شد یه کلیدی کلیدیست در نقش زمان و مکان در اشتحاد در نقش زمان و مکان در اشتحاد نشراسال امام بی وقت کنگری داشت به دیاسته هاشمی شاهرودی استاد مرحمت الله علیه چهارده چه مقالات ایت خوبی اونجا هست یه است که مراد زمان و مکان چیست ما در صد ارز کنیم یعنی زمان و مکان در بازفهم روایت اصل میذارند حالا این خوش یک نشست کامل مفصله نه شما زمان و مکمشی از همون روادی چیز دیگه می فهمیم. و فهم چون استظهار استظهار هم قطع به زهور قطع به زهور حجت هست. تو به قواد استظهار خب پس اینجا داریم ما روی کرد فردی داریم و یک روی کردی داریم که این روی کرد میگه اسلام فقط در حیطه اکام فردی یعنی تنظیم روابط خود با خودت و با خدایت نیست اگر اسلام منصر بشه به تنظیم روید خود با خودت و خدایت این میشه یک حیطه فردی من میم فقه فردی از این فقه فردی و دوگانه درست دو میکنن این دوگانه مثلا در دین بودا خوبه دین بودا دینشون فردیه کاری به دی... اون رو خدا هم ندارن کاری به, دی... به دیگری و به جامعه و به ایچی ندارن داره تو رو به کنی پاک بشی سیغل پیدا کنی خودتو نجات بدی تم خوب میشه فردی با اسلام با فقه سنتی ما رو دوتا ارزمند داشتم یک فقه سنتی با اون چارچوب اسلام و مختزیات زمان و قواعدی که شهید متحریم اونجا بیانش میکنه خیلی قابلیت ها و قابلیت تطبیق با نیاز روز داره همون فردیش این نظر به فردیه در مسیحیت و فردی در بودا و کجا کجا کجا نه همون فردیش خیلی قابل تطویق داره رو بایدون مخزمان رو بخونید دو همون فقه سنتی ما مگه فقط فردیه چون میگید فردی با همین معنی روی کردی نه فقه ها روی کرده اجتماعی داشتن مگه میشه فقیه حدود یاد بحث کنه هدود یاد اجتماعی نباشه مگه میشه نماز جماعت بحث کنید روی کرد اجتماعی نباشه نه میخواه فقط مسئله ما حکم اجتماعی داریم که همه فوق بحث میکنن حالا اجراش در اصر غیبت که محصوب میخواد نمیخواد از ده ده دارن اصلا که تو در فقی قبولش دارن میگه من مجری هستم ولی هستم نیستم فقید تو خودش شک میکنن که مجازم یا نه احکامی که در پس ما یک سلسله احکام اجتماعی داریم این که جای ای نیست دو در بررسی اکام اجتماعی تعلیل ها تحلیل هایی که فقها ها در حل مسائل اجتماعی میارن تحلیل و روی اجتماعی، اجتماعیه من با من روی کردی عرض میکنم این با نگاه اجتماعی به حل مسئله و استنبات میپردازن این در فقه سنتی ما هست و خیلی کم رنگ هم نیست از فقه های متعدد میشه مثال بود پس فقه موجود ما تا قبل از این فقه فردی اجتماعی بود. امام یعقوب جدیدی زد که فقه و شأن پیامبر اداره جامعه است و جامعه اساس و قوانین قوانین حکومتداری آن و این رویکرد حکومتی پررنگ شد. چی شد؟ بچه‌ها میگم پررنگ چون دوباره قائلم که روی کرده حکومتی هم در فقه ما بود. عزیزان سفران مقالاتی نوشتن. خواهد حقیرم میتونی مراجعه کنید رساله هایی که معقل کرکی در زمان خودش داره مینویسه دعوه که با اخبارین اون زمان افتاده سریعا دعوه رو کرد حکومتی اونجا هستن که حکومت میتونه مالیات بگیره اونها میگه نمیشه شون میگه میشه اما خب کمرنگ بود به سببی که خود مقام معظم رهبری هم داره که به خاطر اینکه فقاه حکومت نداشتند و درگیر نبودن این مجال اجرا نداشتن مباحثشم کمرنگ شد لذا پس ما قائلیم فقه روی کرد فردی اجتماعی و حکومتی دارد روی کرد به این معنا با این نگاه که اسلام آمده برای حکومتداری و اداره جامعه نه اینکه پیامبر پیانبر پیغام آور من الغیب است و مردم خواستن که تو بیا حکومت کن گفت چشم اگه نمی گفتن نمیکرد. نمی کرد نقصی هم در دین نبود بعض این میخوام بگن دیگه بگن حکومت داری جزء ذات دین نیست یه توافق اجتماعی اون زمان بود که برایشون مجال پیش آمد خب این با برای این هم که خطش بزنیم یه کسی می گفت روسیم لگت گرفت که زم خب یه نکته هم که اینجا بخواهیم یه کدی هم خدمت شما عرض کنیم چنده. نه بعد خب یک نکته هم که تا یه رو هر وقت داریم ما هر روز 20 خدمتشون مییم یه نکته هم که خدمت از یه نکته هم که شما میخواد کد بدیم به این مراجعه کنید این است که اون حدیث معروف امامت در کافی حدیث معروف است از امام رضا علیه السلام در کافی آمده در رابطه با فلسفه امامت اونجا بحث میکنن که آقا ما تو مسجد بودیم مردم میشه درباره امامت بحث میکنیم امام میگه امامت کی کو مردم کو مردم امامت چی میفهمن بعد امام میاد مقام امامت رو من میگم چطور میشه یا ای آخون؟ این حدیث امام رضا رو بخونه بعد بگه حضرت اعمیر چون که مردم بهش رای دادن حاکم شد من میگم این حدیث نخوندن نمیشه کسی این حدیث امامت امام رضا رو تو کافی در سفرش در سرسره در نیشابور که نقل از مسجد نیشابور میشه به امام و امام میاد سه صفحه مقام امامت رو توضیح میده اون ابعاد سیاسی و اجتماعی و ابعاد چه و چه و چه و اون مقام امامت رو و اون نمیشه که اون آدم بی اسلام حکومت ندارد و همچنین احادیث امام رضا در فلسفه خطبه نماز جمعه اینا بید بخونید اینا تو علالا شرایع آمده فلسفه نماز جمعه خود علت مثلا خطبه نماز جمعه تو مرحوم صدق تو اله شرایع آورده بینینا بخواینا رو اگه میشه وزیفه خطیب این باشد که به این مسائل بپردازد و این اسلام حکومت مثلا ندارد در اینجا خب این مسائل رو من دیگه به صورت ازش میگذرم در اون روی کردی که ما آمدیم در این مسیر مقام موضوع معظم رهبری اینو میگه حالا در اینی که شون بارها تأکید دارند به اینکه فقه سنتی فقه قبیست و تلاش هزار ساله است و تصریح دارن ایشون که باید با دقت اون رو پی گرفت و پیگیری گیری کرد یکی ده و هشت و آدرسای دیگه ای که اینجا هست میسونه هشت شست و چهار و در ویژگی های داره صحبت میکنه و مطرح میکنه اما در این حال میگه ما باید به سمت این تحول و نوآوری بریم و نگاه را از فقه فردی به نگاه سیاسی اجتماعی بیایم تغییر بدیم تا فق بتواند اداره جامعه کند اون چه که تا امروز فقها ها زحمت کشیدند و خیلی هم شعون مختلف زندگی رو بررسی کردن مسائل اجتماعی رو بررسی کردن و زم، زحمات گسترده قابله چون مفصل تو این صحبت میکنه میگه اما در این حال میگه یه نکته ای که در اینجا مخفول مانده این است فقی فق را برای اداره و حکومتداری بحث نکرد نکته کلیدی حرفیشون اینه میگه اون چی که در فقی بحث شد ما باید فقه را به بحث کنیم که این فقه بیاید آماده چه بشود؟ آماده حکومتداری بشود یعنی فقیق با روی فقه حکومتی در هر یک از مباحثی که به اون میپردازه با نگاه فقه حکومتی بیاد به مسائل رو بررسی کنه نه با اون نگاه های دیگر این نقطه کلیدیست که در کلماتشون مکرر ذکر شده و مطرح شده که ما اونچه که امروز نیاز داریم این نکته است که فکر میشه طراحی اون نرم اداره جامعه که بعد بیاد نقش خودشو در طراحی نرم اداره جامعه بیاد خودشون نشان بده میگه این نگاه نگاهی است که ما به اون نیازمندیم و این روی کرد اجتماعی حکومتی رو ما باید در جای جای مسائلمون داشته باشیم ایشون میگه فقه اسلام اجام اسنا میگه تنها تعارظ و نجاسات عبادات نمی باشد بلکه مشتمل بر اموری است که منطبق بر همه جوانه زندگی است عبادات اجتماعی سیاسی عبادی نظامی اقتصادی چنین فقی تمامش اون زندگی انسان از جمله ذهن و مغز و دل و جان آدمی آداب زندگی و معاشتی ارتباطات اجتماعی سیاسی خارجی رو داره می کند سی یازده هفتاد رضا می ما این نگاه رو باید داشته باشیم و این نگاه میگه در بدنه آموزشی فقه ما تجلی پیدا نکرد چارده سه هفتاد و شش لذا ما باید بیایم با استفاده از اون قوت شریعت بیایم فقه را به سمت پاسخوی به نیازهای نظام سوق بدیم چار یازده هفته دو هشت میگه به تعبیر دیگر دین در خدمت اداره زندگی مردم است و سیاست از دین تغذیه میکند از این روی استنباط فقهی باید بر اساس فقه اداره نظام باشد ما این نظام داریم حکومت داریم و جامعه اداره داره کنیم فقه بگه آقای حاکم تو چطور حکومت را اداره کن نه فقه اداره فرد رضا فقه از تهارت تا دیاد باید ناظر به اداره یک کشور جامعه و نظام باشد سی یک پس در انتهای جنبندی ما یک روی کرده ما با هایی که دارد فقه فردی اجتماعی است. این روی کرد وجود دارد اما مده این است که فقه باید بیاد به سمت روی کرده فقه حکومتی یعنی با نگاه اینکه که فقه برای طراحی قوانین اداره جامعه این نگاه این نگاه فرقش چیه؟ فرقش اینه که فقر مسائل حکومتی بابی از عباب نیست این فرق است بین فرق حکومت و فقر حکومتی اینجا دقت کنید یه وقت میگیم فقر پزشکی فرق اقتصادی فرق تربیتی اینا تقسیم فرق ناظره به ساحات و عواب این بینیم مسائل پزشکی مجموع مسائل تربیتی یعنی این فقه حکومت این مجموع مسائل حکومت داری آقا حاکم میخواد قانون بذاره نذاره چه مسائلی در رابطه و تنظیم رابطه حاکم مردم اینو با هم هستن این میشه فقه حکومت این میشه غسیم دیگر ابواب. مثل فقه غذا قاضی میخواد غذاوت کنه اکامش آدابش اما فقه حکومتی یعنی این روی کرده این که فقه برای طراحی اداره جامعه است به نماز هم میرسی میخوا این نماز نقش تربیتیش در اداره جامعه کاش بزهکاری چیست به روزه می‌رسی، میگه این در اون حفظ مباسات اجتماعی است؟ به حج می‌رسی، میگه در اون انسجام وحدت جهانی حج چه نقشی دارد یعنی همه عبادات ما با روی کرده فقه حکومتی لذا همه عواب میدن در زیل فقه حکومتی دیگه فقه حکومتی، یک روی کرده نگاهیست به کل فرق نه یک باب از دیگر عواب نصد به فرق است بین فقه هل حکومت و فقه حکومی بین فقه حکومت و فقه حکومتی مقالمیم این روی کرده مدعای امام و رهبری این روی کرده حکومتی است. میگه این روی کرده بعد عوض بشه این نگاهه بعد عوض بشه لذایشون مطالبی دارن که تو استنبات هم اختزاعات این در استنبات چیست اختزاع او در موضوع شناسی چیست حالا رابطه او در علوم انسانی و دیگر علوم چیست اینجا خب مطالب متعددی از ایشون وجود داره مقالاتی هم وجود داره و انشانالا سروران این مباحث رو در طول مسیر خودشون پیگیری میکنند. اون نکتهی که ما ارز کردیم که فق که میشه نگاهش فقه حکومتی. حکومت میشه اساس قوانین فقه میشه قوانین حکومت حاکم و فقیم یا در رأس اینجاست من یه مثال بزنم برای اون نظامسازی حالا خیلی ها قاعد به فقه حکومتی هستند. یعنی این روی کردینه یه بحث جدیدتری مطرح شد که آیا فقه حکومتی می توانه به سمتی بره که نظام ساز باشه و نظام مند یا خیر یه دعوایی که چند سال اخیر هست یه مده‌ایه اینه که فقه و حکومتی و این حرفی که امامزاد تا همین جا تمام می‌شه و کافی است ما برای طراحی اداره طراحی نرم اداره جامعه فقه نقشه خودشو ایفا میکنه و کامل اصلا نقصانی نداریم این حرفی نه ما امروزه آمدیم این کار را کردیم تو عرض اقتصاد آمدیم قوانی اقتصاد را جرخت با نگاه حکومتی هم بعضی احکام رو که مثلا محدودیت داشت توسعه دادیم کزا با نگاه مسلحتی یه توصیح هایی باز کردیم اما دوباره تو زمین دشمن بازی کردیم چون که طراحی کلان نظام اقتصادی نکردیم اون روح ربا و رببی و ماند. در عرض تربیت چون طراحی نظام تربیتی نکردیم دروزی درس میدیم که این دروس در تقویت ابزار شناخت کارایی میکنن که بعدا با نیازمندیایمون نمی سازه من این یک فایب مثال بزنم و ازش بگذریم حالا فقه هم نقشه خودش میده با یک عنصر فقهی مثال میزنم به تمام نه بحث تربیت شما اولا برید فلسفه فلسفه تربیت ایرانو بخونید نهای داوری کتاب داره توش اولش فعلا ثابت تربیت آمریکا ل آورد شما مثلا میخونی تعجب میکنی میگی این. بعد ایران هم بذار کنارش یعنی عین همان فقط اونجا انجیل شده و قران شده چند تا بند کوتاه بس شد نوتی دو نهون نظام غربی نیازمندی های داشت این نظام تمدن طلایی کرد ابتدایی متوسطه اول دوم ابتدای این درس ها رو بخونن ما یه سوال میکنم تو درس های در ابتدایی ما میخونیم بچه یاد میدیم چی یاد میدیم اکسران علوم پایه یاد میدیم یک سری مسائلی در رابطه با پیرامون کیفیت نگاه به تاریخ و جغرافی و... ها تو تاریخ چی میگن نمیگن خودش بماند تو اجتماعی اون خانوادهی که از هیچوقت نمازی خدای پنگاهی وغنبری و هیخ خطار میزنن به رئیس خانواده میدن کتاب باز کنید تعجب میکنید و هنوزم هست کاملا رهبری و اداره جامعه رهبری فردی را زیر سآل میبری درس. معلم های متداریه میمانند که چی بکن چی درس بدن این که بخشو خب این را بزاریم انرافه هایی کنار اما روح آکنبر این میگه آقا بچه شما میریم آزمایشگاه علوم تجربی ریاضی و, و یعنی کدوم درس های ابتدایی ما کدوم ابزار شناخت تقریبیت میکنن ابزار شناخت و تجربی و دائمه هم طرف علم تجربی میخوانند یعنی اون علم و بنای ساینس به مصطلح روزشو داره میخونه بعد هی ابزار تجربیش تقویت میشه این دفعه دختر میشه نه سال پسر میشه پونزه سال پونزه سال بعد چی بشه؟ آم؟ بلوغ است و تکلیف هست و اینه فماهی فقیه دیگه خب بلوغ یعنی بلوغ و تکلیف تکلیف هنی چی؟ یعنی در فقه اعتقادات معتقده به ایمان به غیب خدایی است. دینی هست دین برتر هست ایمان به دست سؤال ابزار شناخت و باور به غیب چه ابزار شناختی هست؟ تجربه هست؟ خوش شما چه مقدمه چینی برای تقویت ابزار شناخت عقلانی بچه کردید که به توانه نکن ما نظام اینه ما میگیم دختر در 9 سالگی یا چند سالگی، پسر 14 سالگی باید مسئولیت قوانین حقوقی داریم. اگه بزنه کسی رو بکشه، زندان میره. چه میشه؟ به مالت کنه و تبعات حقوقی هم داره تو عطو قانون اساسی ما و قوانین مدنی ما. خب وقتی که از سن بلوغ این قوانین هست، خب نظام آموزش و پرورش باید به طرفو آماده کنه برای این مسئولیت‌های اجتماعی، دینی ما تو تراحی آموز پرورش چقدر اینو لحاظ کردیم چقدر بلوغ لحاظ کردیم اینو باید اون تراحی پنهان نظام آموز پرورش باشه یعنی ابزار شناخت عقلانی باید به مرور روش کند نگیم اگه دیدی هست ندیدی نیست این بخشی از روح حاکم نظام ترمتربیت ماست بلوغ میرسه خدا ندیده دیگه پس نیست لذا عنصر های فقهی و تنظیر اسلامی در طراحی نظام باید بیان. اینجا فقه هست که نقش خودش نشون بده. امروز اقتصاد ما فقه ما نظام اقتصاد اسلامی میگه طراحی کنید جا به جاش تو فقه. و آخرین کلام، ما امروز نظام اداره از ما, ما چیه؟ ولاد فقیه. ولاد فقیه یک نظریه فقه سیاسی دیگه این نظری قدرت هرمی فقی در رأس تعریف میشه و چارچوب احکام و قدرت در قوای سگانه میاد پایین هرمی میاد خود این کلان نظری از کجا آمده از سیاسی. این بزرگترین کلان نظری ما در چارچوب فقه نظامه یه انسجامی درست میکنه بین او و کل سیستم قوانین زیمه از اینجاست که ما می فقه حکومتی باید بره به سمت طراحی فقه نظام ساز این احکامو در این مجموعه طراحی های رفتاری اداره جامعه بره به این سمت خودش رو ببینه اونجیه که روح کلام امام راحل و مقام معظم رهبری انتظار از فقه در این گفتمانه در این چارچوبه با این روی کرده ما به میگیم روی کرده فقه حکومتی نظاممند نظامساز نظامی فقه اگر برای این معرفت تعریف کنیم فقه میشه معرفت بر مجموع احکام فردی و اجتماعی در راستای اداره جامعه خب و السلام علیکم و رحمت الله و <تصفيق> من اینجا گفتم واسه ما از شما این, هم قاسم این مقاله ای که آقایون دارن که می آقا تو همین واسه فقه و حکومتی چون تغییر حکم یکی از نکات مهم فقه حکومتی احکام حکومتیه احکام حکومتی اختیار و حاکمه حاکم میگه این نباشد باشد آقای می این خلاف اون حلال محمد والله حلال الیوم قیامت حرامش این با جاودانگی احکام سازگاری و این بحث‌ها این مقاله ما داشتیم تو مجله گفتمان حکومتی چاپ شده بس قلم روی اختیارات حاکم در تقنین تقنین در قانونگذاری مفصل ما عدله رقیب رو ما و چلا مکارمتون کتاب بیش دارتو معرفق مقارنش این مطلب رو دارن ما عدلهشون رو آوردیم بعد نگاه شیستد رو آوردیم و نگاه امام رو که از او دفاع کردیم اونجا مفصل این مطالب و نقد این دلیل و این شبهی که در همین چون زیر همین نکته است. یه مقاله دیگه هم باز هست تو همونجا چاپ شده تو اینترنت هم هست اثبات ضرورت حکومت بر اساس ماهیت احکام خود احکام رو نگاه کنید، حرفی که محروم های برجیدی تو بدر الظاهر، فیصلات جمعه مسافر مقدماتی داره، امام تو بیش داره، ما این بحث مفصل کردیم که خود احکام لازمه ای ضرورت حکومت در عصر غیبت و برپای حکومت و اداره حکومت هست اینجا دو مقالم خواستید نگاه کنید بعضی مباحث رو هم تو پیشینهش وحسای فقه روی کرده فقه و حکومتی این رو که مستند آهردین تقوییت میکنه و مکمل وحسای امروزه بفرموید تشکر از استاد بزرگوار، حالا عزیزان سوالات رو به صورت مکتوب، حالا رفت گردن نوشتن مجای مستقی استاد بزرگوار، زحمت تره این سوالات رو میکشن که از بزرگوار استفاده رو اگه کسی سؤالی اگر دوست کنید اینجا حالا عزیزان اگرم سوال مکتوبی باز داشتن, داشتن به صورت مکتوب بنویسن حالا عزیزان که هستن تحویل بدن تا ان اینجا مطرح بشه صلوات بفرستید الله و علی محمد و آل محمد هستی فرصت بدین کلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من فقط به خدمت سرداران یه عذرخواهی بکنم چون تعداد سوالاتی که رسیده خیلی زیاد هست من میدونم حالا شاید فرصت حالا بخونید ما سعی کنیم کوتاه جواب بدیم یه چنتاش برید اینکه راحت هست در آدرس دهی و اینها هست اینها رو میگه حضرت استاد مقداری فرغودان به جایی هم دوستان بعدا تو مقالاتی هم گفتم بعضی آدرس هاش هست دو مقاله رجوع کنید تو پیشینه و مقدمات اینها هست تعریفا اینا اونجا اومده این دو مقاله رو و هم اینترنت رجوع کنید بزنید این نامشو تو سایت مجله اگه گفتمان فقه و حکومتی هم مراجعه کنید یه مقاله از مقایسه ولاد فقی از نگاه امام و از نگاه طبقه بروجردی و امام اونم باز این نظریه و مقدماتی که بروجردی ارائه کردم داره تو اون مقاله من آوردم اونم باز تو این نرم افزار فقه اینجا چون تو مجله فقه چاپ شده هم فارسی هم تو نرم افزار اینترنت هم هست این دو مقاله مراجع ببین بعضی آدرس های این مطالبی که به سرعت عرض کردیم نخاندیم آدرساش اونجا توی مقالات اومده بفهمید که آیا قسم که امام حکومت و که تو این ای که اخیر ذکردم کردم نقش رهبر در تقنین ذکر در نظر شایست دوم امام سومه من گونه شایسته من خلاصه بگم تو مقاله توضیح دادم یعنی دعوای اون مقاله تام همینه یه این میکنن امروز غالبا کسانی که این 50 جلد سجل ولات فقیر ببینید من مدهیم که این مقاله جزو اول اینها صلح شادی یکی از این نوشته مام ندیدیم. البته من تتبعم بد نیست حال کسی نیامد بگه ولاد فقیر در اج ولاد مطلقه فقیر در اجنا ولات مطلقه فقیر در تقنین ولات مطلقه فقیر در اجرا را فقها گذشته قبول داشتن، شاگردان امام قبول دارن یه امریست قبولشه که این نظر فقهی معونه کمتری داره تو صاحب جواهر میگه که از ولد فقیر انکار کنه ما آقام من تعمل فقشه یا یه بخش عمدهش به اجرام بخوره دعوای امام حتی با نیمی از شاگردانش آیه صبحانی قبول نداره، آیه جوادی قبول نداره یه دیگه قبول ندارن من تو مقاله آوردم ولد فقی، ولد مطلقه در م در قانون گذاری حتی در دایه الزامیات شیصد میگه ما یه الزامیات داریم حلال حرام پیام خدا گفت اینو فقی بذاره کنار دست نزنه یه منطقت فراقی داریم مباهات در مباهات شاره نگفت اینجا حاکم بیاد فقی بیاد حکومت بیاد اینجا الزام حکومتی درست کند امام میگه فقی اختیار تقنیل و الزام داره در مجموعه احکام ایلزام شنیدید دیگه اون سال حج گوه حتی میتونه احکام اولی هم جوا کنه بگه تحتیل پس شیست در دایر مباهات میفرماد امام قولو مقید به عرصه مباهات نمی کنه خیلی فرق داره این شیست جرعت همون تو مباهات برده تو فضای نجف خیلی فاصله داره شیسته نظرش تو نظر امام فاصله معناداری داره امام خیلی نظرش میشرفتره خب سلیمان پشکر کردن و مطلب مطلبی که به عموم طلاب انقلابی اصفرد دادن اینه که سوالشون اینه که آیا نگاه حکومتی به روایات چطور میتونه حاصل بشه؟ چون معمولا در چرایی و ضرورت اون معمولا اتفاق نظر است. من به چگونه یه دست بیابی به اون خیلی اختلاف هست. و بالا اون یکی با که متاسفانه کاری که ما نکردیم 20 سال درباره مثل دیدی که در آین آیین رانندگی بس میکنن همه آیین نامه بس میکنن کسی پشت فرمون نمیشینه کسی 20 سال آینامه نامه پشت فرمون نمیشینه راننده نمیشینه الان به چارچوبای فرقه حکومتی یعنی آرام آرام داره میاد تو عصر دوم غالبا کسانی بودن که مدرس مبرز درس خارج نبودن اون که تفصیلی درباره فرقه امیدی بحث کردن نیامدن اونو اون رو در تطویر بر استنباط‌های در صلات در, در زکات در حج پیاده کنن این بشود این باید بشود این نشود مثل امام لازره چونیستی تو استنباط این لازرار این است یه قاعده فقهی رو ابطال کرد یه قاعده سلطانی حکومتی ساخت اینو ما کم داریم چرا چون فقهای بزرگ قائل به گفت ما نهفقه حکومتی نیامدن در استنبات این رو به کار ببندن. چرا نشود با خواهد نقطه که اول اول اول از کردن استنباط ما بسیار استنباط قاعد مند زابط مند هست و استنباط ریشه در اصول فق داره اصول فق تا روی کرد فق و حکومتی نشود استنباط های فقهیه آدم که من زمان بندی دارن حکومتی نمی شود رسا باید اصول فق تغییر کنن این زوابط استنباط ما یه زمانی پنشنبایی کلاسی داشتیم نشاستی من دورم اینو ببینید تو هم اینترنت هست صوت تصویرش هم کوتاه هست امکان اصول فقه فقه حکومتی البته یہ فقه حزم امکان اصول فقه حکومتی هم به دقت دو تا فقه میخواد امکان اصول فقه فقه حکومتی که میشه ما اصول فقه فقه میشه وشین اونجا ایده حقیقی چند تا مثالم زدم دیگه اون نشاست چون که هست و صوتش هست و متنش هم خلاص فل جمله هست تا اصول فقه ما یعنی قوائد استنباد ما تغییر نکنه لذا شما مثلا ببینید بعضی از اساتیر بزرگان فقه های مسلم میان شوانه میان درس خالج میدن درس خالجشون به همون مدل فقه است رگاه فقه حکومتی کم دیده میشه کم رنگه چون زبابت با تغییر نکنه ما به زبابت با تغییر بودیم خودش تغییر میزنید. وقت می‌بره. من تو،, تو اون نشست نمونه ذک کردم. می‌خوام به سالات برسیم. نکن روی کرد. اون چند تو من مثال زدم، اونجا آوردن دیگر. اون رو ببینید به نظرم یک اجمالی از مساله میاد تغییر مکمل. نگوشونم آنها مایتول عراکی میاد. مثلا مکلف کلان داره یا شایسته تو مدرسه قرآنیش فقه اجتماعی داره. این یعنی واجب اجتماعی. واجب چند چیزه؟ تقسیمات واجب تو فقه میخوایند دیگه واجب تخیری واجب کفایت. حاگه این واجبه بخونید ماهیت واجبه اجتماعی چیه؟ و ترسیم اصول فقهی میشه. اگه تونستیم میاد تو فقه. نتونستیم در حد مدعا میماند. تو اصول فقه باید جای جای بهش کنیم موارد فقه حکمای تبدیل و قواعد اصول فقه ما بشه. برد. تا نشود اجتهاد مجتهدین ذابطه من قوی تو اصول فقه از چارچوب خارج نمیشه. ما یه فایلی دارم. خودم اومدم این کار کردم. کل مباحث اخرو حکومتی و مطالب خوندم بودن اصول فقه ریختن اینارو یزمه ای خواستیم به ترتیب بحث کنیم که بعضی اشتغالات نذاشته اون بحث رو جلسه ادامه پیدا کنه که چه کنیم اصول فقه ما با این رویکرد بیاد در هر بحث مباحث جدیدش چیست یکی از کلام مباحث تغییر کلام مباحث نگاه نظام عبدالمولا به نظام تقنین یا به نظام اون بحث حکومتی است اینو آقای آیت الله مددی پس تو سایتش برید نگاهی داره ایشون اون متنه مددی رو بخونید اون یکی مباید کلان تغییر روی کرد اصول فقه یکی از سوالایی که چند نفر انجام دادن اینه که آیا نگاه حضرت امام حضرت آقا که یه سری این روی کردها دارن آیا واقعا میشه اسمشو مکتب گذاش؟ از لحاظ فقه ترنه خود تفسیر به مکتب بی بحثیست دیگه شما مکتب معنا می‌کنی؟ مکتب مذهب مشرب اینو یه بحثایی است که کلام بحث ما یه کتاب داریم اندیشه اصولی امام اونجا من آوردم البته این هنوز چاپ نشده تمام های اصولی امام رو توی یه کتاب 300 صفحه‌ای با تطبیق با دیگر اصولی من جمع کردم و دادیم برای انتشار تو اونجا آوردیم که امام مکتب است یا یک مشرب روی کرد اگه مکتب رو به معنای مکتب اخباری و مثلا مکتبای کذاب بگیریم که تحول کلام مثل فلسفه در فلسفه میگیدین اونا که اشراقی هن اونایی که معروف هن اگر مکتب از اونجا درست کنیم اخباری هن یا اجتهادی هن ما همه توی مکتبی اصولی هستیم این ها میشه مشربهای اصولی مکتب نمیشود از اون تعبیر دقیق از مکتب رو شد برای مکتب یه معنای آم میمیکنه آم مکتب آقای خوبی مکتبی نه درست نیست مکاتب اون دستبندیه های کلان روی کرده در یک علم با اون معنا تبیر مکتب درست نیست شما فهم بودن که آیا اوم انسانی کرده تا آخرونده صرفاً چارچوب کلیه رفتارهای انسانی رو در هر مشخص میکنه مثلاً که بحث اقتصاد <تصفح> اصنانی صرفا قواهد کلی رفتارهای اقتصادی انسان مشخص میشه و جزئیات و قواهد جزئی از منابعی مثل تدرمینا به دستگیر یا نه در بحث اقتصاد اسلامی یکی از مهم انسانی جزئیات و قواهد جزئیات و قواهد جزئی رو هم میشه این این تو... به نظرم تو این سلسله در حسای بعدی اساتی دیگه آرام آرام به بعضی از سوالات ما،, ما خواستم بعض ما یه درامده کلانی گفتم که مقدمه بر کل حسای بعدی باشه. این نگاهی کلانی ای که باید اول بدانید رو من این رو سعی کردم عرض کنم اونجا نخواهید بستگی داره این به نظریه شما در فقه نظام برگشت میکنه تعبیر دعوه مختلفه دیگه من برداشته خودم عرض میکنم ما قاریم در فقه نظام بعضی جایی که نظریه و نظام مندی هست مثل اون بحث مثال فقه سیاسی زدم خود نظام یا چارچوب و ساختار میسازه نظریه ولاد سیاسی خودش ساخت اینمش تغییرش داد به تجربه کرد یه جایی است که اون منطقه الفراغ ها میاد یعنی اسلام تو یه جاهایی در اون کلان نظریه خود اساس نظریه ساختار ساز یعنی می‌بنده چون تو اون ساختار بری یه جایی آزاد میذاره یه حکم کلی نمیشه داد که در تمام جزئیات ما ورود نمی‌کنه نه خیر احکام اسلام جزیر گفته خداوند ورود کرده اونجا تخته کرده و قلا رو لازم اون نظام کلان ترهایی بشه تا پاسخ داد اجمالا تا اونجایی که هنوز که نشد درک ما از کلان به صورت کلی داریم به تفصیل میشویم نمیشه کلی وکر که که همه جا اولایی رها میشود خیر همه جا رها نمیشه یه که, جا، مطرح شده اینه که به, به اجتماع نگاه نمیکنه خب ما پاسخ دادیم آقای آیت الله جلسه بعد خدمت شما میاد کتاب داره فقه سیاسی برید بخونید دین یعنی چی؟ خود دین منابع داره ما دین نگاه نمی یه دیگه گزاره است اینو از کجا گرفتید شما؟ بعد از قرآن دیگه اولین منبع ما قرآنه. قرآن میگه من دینم و چیستم آیت الله عراقی تو همین کتاب فقه نظام سیاسی امام که می فرماد دو سفون قرآن چیه؟ تو کتاب بلد فقی، سیاست است خدا آیت الله عراقی اماده تو این کتاب فقه سیاسی آیات نازره به حکومت و حک و حکرانی رو جمع کرده آیتولای مومن آمده تو اون کتاب ولاد الهیش آیات و روایات نازره به اداره جامعه رو جمع کرده و در افعاد متعدد ما میگیم دین ندارد از کجا اونجا بحث شد تک تک یه مستقل خودش باید بشه. این منابع آمدن ذکر کردن از امام از این منابع دیگه که احس کردم که دست رسن الان کردن آیا آوردن شاهده بودن که دین ناظر به اداره جامعه هست و دعوای پیامبران دعوای اسلام و تاقود بود برادر من اگه پیامبران میگفتن هرکی بشینه کار خودشو بکنه چرا این همه پیامبر یک سد و بیست و چهار هزار صد و پیامبر آمدن و خیلیا کشته شدند؟ از بینشون بردن، شهیدشون کردن. دعوای طاغوت، دعوای این است که سبک زندگی چگونه باشد و جامعه چگونه اداره شود. اینجاست با طاغوت درگیر میشنن انبیا، ولو درگیری وجود نمیامد مثل این بودایا باشن کار خودشون، حکومت کار خودش، تی دعوا نیست. درم این همه میکشن با تو میام ما جای دیگه، جای دیگه با هم هم با سیاسیونه که شیطان پرستن، هم جنس بازی ارزش‌های اخلاقی رابطه جنسی با حیوان الان هم شده، خانون اخیر با مرده با هم هم کنار وقتی شما اونجوری باشی بعد، پس چرا این هم انبیاء درگیری شدن؟ یه هیچی اصلا فکر کنه فقط، بعد ادامه این بود که روی کرده اگه متفاول شد توی پوقه ها چجوری باید که با این بیان شد؟ نشان سوال آخر که، بخشن یه سوال آخر باشه اینه که دو بخش داره اینه که اگه به نرم افزار اداره حکومته اون رابطه حکومت فاانونی البته فکر بخشی شده ما میگیم فقط این بعضی اخلاق اعتقادات میان فیعنی بخش عمده ای از تراحیه نرم افزار اداره جامعه است. چون برای اخلاقیات و برای اعتقادات اونا هم ما نقش مهم قائلی مجموع نرم افزار اداره میشه دامنش اینه که آیا با این اصطلاح وصف اون ابلاغ سیاست های کلی قانون گذاری که توسط مقام معظم رهبری در سال 97-98 انجام شد و اونجا اشاره میکنه در بند یک و دو که تمام قوانین جوشیده از اسلام باشه و قوانینی هم که در گذشته اینجوری نبوده و فقط با اون نگاه عدم مغایرت بحث شده همش اصلاح بشه آیا میشه که نظر فت فکتبه کلیه حضرت آقا اینه که اون مطلب نظام سازی که شما فرمودید اون رو در واقع سهم میذارندش ما شواهد غیر از اون هم داریم یعنی تو همین کلماتی که من نرسیدم که زمینه عباراتهایشونام بخونم میگه برای اداره نظام طراحی نظام البته ایشون مبسوط به این دعوای نظام و اون تفاصيل نظری در نظام سازی که ورود نکردن. اما در این روی کلان، یعنی رویکرده حکومتی اداره نظام خب عبارات متعددی از هست که این مطلب رو دارن که حکومت بالاخره باید بیاد سبق زندگی تولید کنه حکومت باید به اداره نظام کنه حکومت باید بیاد استنباتات اداره نظام،, اداره نظام فرد نباشد اداره چی باشد؟ نظام اجتماعی باشد این مطالب رو کودهاشو داره بالاخره تا حدودی باید اللهم صلَّى على محمد وَسَلَّمَ. محمد عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. علیجان توجه که کتاب تربیت ایرانی اون یک کتاب فلسفه نظام تربیت روهای به نظرم نشون باشه ولی اسمش آدم نمونه یعنی فلسفه تربیت داره به همین اسم قدیمی ما اس کتاب فلسفه تربیت همین آنه داوری به نظرم باشه اصلا خسته یه چیزی جان نمیفته اگه فخ رو به معنای حکومتی و انقلابی آم میگیری چطور اون وقتی رو نرم‌مزاز حکومتطوره چیزی جداثر به نام اخلاقی اعتد ما به نفس اونجا هست اما تمام نیست چون حکومت و اداره جامعه مواث اخلاقی و مواعث اعتقادی دارد اما ب... خوبت شوغلی بحث اگاه اجتماعی داریم اما در این حال شما به اخلاقیات نیستید که فعل از قلم روی فعل خارجن هستیم. قای اخلاقیات در اداره یعنی خانواده من مثال خانواده در خانواده یه ترهه عمدهش میفه چرا حقوق تکالیف زوجین تربیت تربیت خود و معروف فرزندان و و و ده ها مسائل چی توش بریم دها مسائل خصوصیون مسائل فقه تربیت